کیمیا، قونیه، رجب 642 وقتی به فرزندی قبولم کردند، دوازده سال داشتم. پدر و مادر واقعیم آدمهای ساده روستایی بودند. از آنهایی که از صبح علت تا قروب آفتاب توی مزرعه، توی باغ کار میکنند. و زودتر از موقع پیر می شوند. در خانه یک اتاقه و کوچک زندگی می کردیم. خواهرم و من در یک سر اتاق روی یک تشک می خوابیدیم. کنار من اشباه برادر و خواهرهای مرده من می خوابیدند. پنج نوزادی که پشت سر هم مرسهایی ساده گرفته بودند و جان داده بودند. توی خانه فقط من بودم که اشباه را می دیدم. هر وقت می‌خواستم تعریف کنم آن روحای کوچک چه کار می‌کنند، زهره آب می شد. مادرم هم میزد زیر گریه. سعی می کردم توضیح بدهم تعریف بکنم اما بیفایده بود. اصلا نه چیزی بود که باعث نگرانی بشود و نه چیزی که باعث ناراحتی بشود. چون هیچ یک از این شبههای های کوچولو به نظر ناراحت نمی رسیدم. یا ترسناک اما همین را نمی توانستم هیچ جور به خانواده هم حالی بکنم. روزی از روزها حکیمی فرزانه به روستایمان آمد. خسته بود، گرسنه بود و تشنه. موهای سر و ریشش ژولیده بود و از بس جلوه آفتاب چشمهایش را تنگ کرده بود، روی صورتش چروکهای عمیق افتاده بود. پدرم مرد بینوا را به خانه من دعوت کرد تا نفسی تازه کند و کمی بیاساید. آن شب همگی دور منقل نشستید. حکیم حکایت های سهرامیز از سرزمین دور برایمان تعریف کرد. همانطور که او با صدای یک نواخت حرف می‌زد، من هم چشمهایم را بستم و همراه با او صحراهای عربستان و چادرهای بدویهای شمال آفریقا و آبهای آبی دریای مدیترانه را سیاحت کردم. حکیم هر کجا را که تعریف می کرد، من هم توی ذهنم همانجا را مجسم می کردم و می گشتم. در شنزاری یک مناره شیطان پیدا کردم. توی جیبم گذاشتم. می خواستم از یک طرف شنزار به طرف دیگرش بروم که ناگهان بوی زننده و بد به مشامم خورد. ناچار ایستادم و چشمهایم را باز کردم. دیدم روی زمین افتادم. نگو قش کرده بودم. نگو خواب می دیدم. همه اهل خانه دورم جمع شده بودند و با نگرانی نگاهم می کردند. مادرم با یک دستش سرم را نگه داشته بود و با دست دیگرش پیازی نصفه را جلو دماغم گرفته بود و مجبورم میکرد بویش کنم. خواهرم شادمانه دستهایش را به هم زد و گفت حالش سر جا آمد. زنده باد، کیمیا برگشته. مادرم آه عمیقی کشید و گفت خدایا شکرت. بعد به طرف حکیم برگشت و قضیه را توضیح داد گفت: کیمیا از وقتی خیلی کوچک بود این مرس را گرفته. همینطور که نشسته یک دفعه قش می کند. حکیم چیزی نگفت فقط با دقت به من نگاه کرد طوری که انگار میخواست فکرم را بخواند صبح روز بعد خیلی زود بلند شد از همه گیمان یکی یکی تشکر و خداحافظی کرد. اما پیش از رفتن پدرم را گوشهی کشید و گفت دختر تو بچه استثنایی است. خدا به او استعداد بزرگی بخشیده. اگر ارزش چنین این دانسته نشود، حیف می شود. کیمیا را حتماً به مکتب بفرستید. مادرم که گوش تیز کرده بود تا بفهمد حکیم چه میگوید یک دفعه وسط حرفهایش پرید و گفت دختر چه احتیاجی به مکتب دارد؟ حکیم به دخالت مادرم اهمیتی نداد و گفت چون فرزندتان دختر است به این معنی نیست که از چشم خدا افتاده حق تعالی به او استعداد بخشیده مگر شما نعوز از خدا بهتر میدانید. حالا که دخترها مکتب ندارند، دخترتان را به شخصی عالم بسپرید. مادرم سرش را طوری تکان داد که انگار بخواهد بگوید عمران. اما پدرم انگار گیج شده بود. پیدا بود حرفهای حکیم رویش تأثیر گذاشته. به آدم‌های تحصیل کرده به علم و فن اهمیت می‌داد. مرا هم خیلی دوست داشت پدرم. پرسید: اما کسی از علما را نمی‌شناسیم. از کجا پیدا کنیم؟ آن لحظه بود که حکیم پیر پیشنهادی داد که مسیر زندگیم را به کل عوض کرد. گفت: فردی بینظیر در قونی زندگی می کند. اسمش مولانا جلال الدین رومی است. ممکن است داوطلب پرورش دختری مانند کیمیا شود. دخترت را نزد او ببر. پشیمان نمی شوی. همین که حکیم پایش را از خانه بیرون گذاشت، مادرم دستهایش را از دو طرف باز کرد و بنای قرولند گذاشت حاملهم کیمیا باید کمک حالم باشد تازه دختر جماعت چه احتیاجی به درس و مشق دارد. چه حرفها بنشینت توی خانه و بچهداری یاد بگیرد کاش مادرم برای مخالفت با رفتنم دلایل دیگری میآورد مثلا می گفت نمی تواند دوریم را تحمل کند یا دلش راضی نمی شود دخترش موقتی هم که شده پیش خانواده دیگری بماند اگر اینها را می گفت من هم اسیر این حوست نمی شدم و ترجیح میدادم در روستایمان بمانم اما اینها را نگفت فقط می گفت توی کارهای خانه به کمکم احتیاج دارد و برای همین با رفتنم هم مخالف است او هرچه بیشتر این حرف را میزد، من هم هرچه بیشتر قانع می شدم که باید بروم در این میان پدرم تصمیم گرفت با هم به دیدن عالمی برویم که حکیم پیر حرفش را میزد. این شد که چند وقت بعد من و پدرم به راه افتادیم و به قونیه آمدیم. جلو در مدرسه‌ای که مولانا در آن تدریس میکرد منتظرش ماندیم. آقا بابام را اولین بار آن روز دیدم. او از پیش و ها از پس بیرون آمدند. دست و پایم را گم کرده بودم. نتوانستم سرم را بلند کنم و به صورتش نگاه کنم. به دستهایش نگاه کردم انگشتهایش هایش باریک و بلند بود به دست هنرمندها میمانست پدرم پیش مولانا رفت و به من اشاره کرد حضرت مولانا دخترم کیمیا بچی خاص است اما مادرش و من آدم های ای هستیم نمی توانیم آنطور که شایسته است او را پرورش بدهیم. میگویند بزرگترین عالم این حوالی شما هستید. کیمیا را به شاگردی قبول میکنید زیرچشمی زیر چشمی به صورت مولانا نگاه کردم. به نظر نمی آمد تعجب کرده باشد. لابد به شنیدن چنین عادت داشت. همانطور که او و پدرم مشغول صحبت بودند من هم به باغچه پشتی رفتم آنجا مشتی بچه بود اما دختری در میانشان به چشم نمیخورد مدرسه فقط برای پسرها بود اما موقع برگشتن همین که چشمم به زن جوانی افتاد که تک و تنها گوشه‌ای ایستاده بود از حیرت ماتم برد. زن زیبا و جذابی بود. صورتش مثل ما گرد و درخشان بود. پوستش مثل شیر سفید بود. انگار از مرمر تراشیده بودندش. برایش دست تکان دادم. زن با تعجب نگاهم کرد. بعد از لحظه تردید او هم برایم دست تکان داد پیشش رفتم گفت سلام دختر کوچولو. مگر مرا میبینی؟ سرم را که تکان دادم زن از شادی لبخند زد گفت خوب این فوقلاده است کسی به جز تو نمیتواند مرا ببیند همراه با آن زن پیش مولانا و پدرم برگشتم گمان می کردم زن غریبه را که پیشم ببینند صحبتشان را قطع می کنند. اما به حرفشان ادامه دادند زن حق داشت کسی جز من نمی توانست ببیندش مولانا گفت بیا اینجا ببینم کیمیای عزیز آنطور که پدرت می گوید خودت بدون معلم خواندن و نوشتن یاد گرفتهای میگوید استعدادهای خاصی داری و آشق مطالعه ای. بگو ببینم چه چیز کتابها را دوست داری انگار چیزی توی گلویم گره خورد زبانم قفل شد نمیتوانستم جواب بدهم پدرم تشر زود باش کیمیا برای حضرت مولانا تعریف کن. انگار نگران بود مولانا از من نومید بشود. میخواستم درست جواب بدهم. میخواستم پدرم به وجودم افتخار کند. اما هر کاری کردم نتوانستم حرف بزنم. و اگر زن جوانی که کنارم بود دخالت خالت نمی کرد. شاید اصلا حرف نمی زدم و دست خالی به روستایمان من برمی گشتی. اما زن جوان به آرامی دستم را گرفت یالا دختر خوشگل تعریف کن برای مولانا قول می دهم همه چیز رو به راه آن وقت اعتماد به نفس پیدا کردم به طرف مولانا برگشتم و گفتم سرورم، نزد شما پرورش یافتن باعث افتخارم است. از سختی ها فرار نمی کنم، مطالعه را دوست دارم، تشنه یادگیریم. به شما اطمینان می دهم شاگرد خوبی خواهم بود. چشم های مولانا برق زد. گفت خوب، این خیلی عالی است. اما بعد آه کشید. انگار چیز ناخوشایندی به یادش آمده بود. اما تو دختری، ما اگر بدون استراحت و بیوقف درس بخانیم و پیشرفت هم بکنیم خیلی نمیگذرد که تو ازدواج می کنی و سرت به بچهداری گرم می شود. آن وقت این همه سال تدریس به هدر می میرود نمیدانستم چه بگویم اشتیاقم از دست رفته بود پدرم هم انگار حوصلهاش سر رفته بود چشمهایش را به چارقهایش دوخته بود و بیصدا انتظار میکشید درست همان موقع بار دیگر زن جوان به کمک آمد به مولانا بگو که زوجش همیشه دلش میخواسته دختری کوچک داشته باشند. خدا الان تو را فرستاده. اگر دختر بچه را آموزش بدهد همسرش از این بابت خیلی خوشحال می وقتی این جمله ها را عینا بر زبان آوردم مولانا خندید. گفت: میبینم قبلا به خانه ام رفته ای و با زوجم صحبت کرده ای اما کرا در درسهای من دخالت نمی کند فرزند آن هنگام زن جوان آرام آرام سرش را تکان داد و در گوشم اینها را زمزمه کرد بگو درباره کرا حرف نمی زنی او همسر دومش است تو درباره گوهر حرف میزنی، مادر پسرهایش. در حالی که سعی میکردم اسمها را درست تلفظ کنم، گفتم درباره کرا خاتون صحبت نمی کنم، درباره گوهر خاتون صحبت می کنم. مادر پسرهایتان. سایی صورت مولانا را پوشان تبسمش خاموش شد. گفت گوهر مرده فرزندم. همسر مرحومم را از کجا می شناسی؟ داری شوخی می کنی؟ پدرم با دست با وارد صحبت شد. قصد بدی ندارد سرورم. کیمیا دختر با است هیچ وقت به بزرگترها بی احترامی نمی کند. فهمیدم که باید راستش را بگویم گفتم همسر مرحومتان اینجاست پیش من دستم را میگیرد به حرف زدن تشویقم می کند چشمهای بادامی قهوهی صورت ککمکی لباس زرد بلندی دارد زن جوان به دمپایی که اشاره کرد آنها را هم تعریف کردم. میخواهد درباره دمپاییهایش حرف بزنم. با ابریشم براق نارنجی بافته شده. رویش هم گل‌های ریز سرخی کار کردند. خیلی قشنگند. اشک در چشمهای مولانا زد آن دمپایی‌ها را برای گوهر از دمشق خریده بودم خیلی دوستشان داشت مرحوم عالم بزرگ پس از گفتن این حرفها سکوت کرد انگار غرق در فکر به دور دست ها رفته بود اما دوباره سر صحبت را که باز کرد لحن صدایش محبتآمیز و دوستانه بود در صدایش اثری از غم نبود مولانا به پدرم گفت الان میفهمم که چرا همه میگویند دخترتان دختر لایقی است خب دیگر بهتر است راه بیفتیم. می میرویم به خانه ما با هم نهار میخوریم و درباره آینده کیمیا صحبت میکنیم مطمئنم طلبه خیلی خوبی میشود و خیلی از پسرها را پشت سر میگذارد پیش از آن که راه بیفتیم مولانا آرام پرسید اینها را به گوهر هم میگویی فرزند گفتم احتیاجی نیست سرورم او صدایتان را میشنود به من گفت که الان باید برود اما از آنجایی که رفته همیشه با محبت شما را تماشا می کند. مولانا لبخند زد. پدرم هم همینطور. اثری از سوء تفاهم باقی نمانده بود. آن لحظه فهمیدم که تأثیر آشناییم با مولانا خیلی فراتر از محیط خودم خواهد بود. میانه با مادرم هیچ وقت خوب نبود. اما انگار خدا برای پر کردن جای خالی مادرم در قلبم به من همزمان دو پدر داده بود. پدر واقعیم و آقا بابام. این بود حکایت وارد شدنم به خانه مولانا در هشت سال پیش. وقتی به اینجا آمدم بچی تشنه یادگیری، تودار و خجالتی بودم. اما خیلی زود به خانواده جدیدم عادت کردم با گذشت زمان که را از مادر خودم به من نزدیکتر شد همیشه مهربان و دوست داشتنی است پسران مولانا با آغوش باز قبولم کردند. به خصوص پسر بزرگش در حقم برادری کرد علاءالدین طور دیگری دوستم دارد اگر هم حرفی نزند خودم حس میکنم اما من فقط به چشم برادر نگاهش میکنم سرانجام معلوم شد حق با حکیمی بوده که به روستایمان آمده بود با آنکه دلم برای پدرم و خواهرم خیلی تنگ میشود حتی یک بار هم از اینکه به قونیه آمدم و جزو خانواده مولانا شدم، احساس پشیمانی نکرده بودم. حتی یک بار هم زیر این سقف احساس تشویش نکرده بودم. تا موقعی که شمس تبریزی به اینجا آمد، پس از آمدن او، دیگر هیچ چیز مثل سابق نماد نمیشد بماند